بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بخشنده مهربان هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا؟ آیا چونین نیست که زمان طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکر نبود إننا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حقا ما إنسان رأس نطفة مختلف آخری تيم بأورا مئاس بس أورا شنابا با ديناء قرار انا اما و اما مسلمان ما راه را با او نشان دادیم خواه شاکر باشد یا کفران کنند این عکه فیرین سلاسل و ما برای کافران زنجیرها و توقها و شعلهای سوزان آماده کرده ایم این الابغار یشربون من که این کان مذاج و آکا خورا از جام می نوشند که با اطفی خوش آمیختر عینن یشرب بها عباد الله مفجرونها تفجیرا از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر بخواهند آن را جاری می صافند یوفون بالنظر و یقافون یوم انکان شروهو آنها به خود وفا میکنند و از روزی که عذابش گفترده درست می پسند ویقیعون مسکین و یتیمن و و خود را با این که به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند. انما نقعلكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا و کویان ما شما را برای خدا اطعام میکنیم، و هیچ پاداش با تشکر از شما نمیخواهیم نه نهخوا من ما پر بگ من خایتین درام رو که با الله بخش شدید ما وشا غظلی که اون از این خداوند آنها را از شر آن روز نگه می و از آنها استقبال می در حال که شادمان و مسرورند خداوند در برابر شکیبایی آنان بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنها پاداش می‌دهد. موت دگین فيها على الاراضي لا يرون فيها ذمسا ولا ذم هديره ان در حولي برتق طای حول زیبا تکه کردند نه اوتاب را در آنجا می‌بینند نه فرما ودانيهن عليه انظلاها وزللت سقوفها تذليلا باطرفالدي كسايهالي ان برانها روح اوتاده بحثيدن ميبهايش بسيار آثارند وانفاق عليهم بآلية من فضل و كانت قواریرا با ترکر تاکر آنها، تا انها زرف با قدر هاوی بلورین میکتانان قواریرا انفضت قد دروها تخذیرا زرف كه آنها که انها را موتا کرتا عنه ویشکون پیها کأساً کان مزاج هاداً جدیلا واحتران جا اچام هاوی سیراف می شوند کلپریف از شراب توهوری که باوتاً جبیل آمی اختاف عینم پیها تسماتاً سبیلا از چشمه در بهشت که نامش کل سبیله و یقوف علیهم ولدامون مخلدون اذا رأیتهم حسیرتهم لؤلؤمن منطورا وعبر کرده انها نوچبانان جاویدانی می کردند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی. مرطاقی دی پراکن تا امن و اذا و ایت تم و ايت نعیما و ملکا به بحنگامی که انجا را ببینی نعمت ها و ملک عصیم را میبینی عایهم تیاب سندس خبر و اشتر وطن و حلو اشاوی بر اندام آنها لباسهای از حریر نازک رنگ و از دیباوگ سخیم و با, با دستبندهای از نقره ستین شده و پربارکارشان شراب طهور و آنها مینوشاند إن هذا كان لكم جزاء وكان ساعيكم مشهورا حقا این جثاوچی شما و ساعی و تلاش شما مقدرت قات درونی إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مصدلا ما قرآن را بر کتی. بصر حكم ربک و لا توقع حكم با باش, با حكم با باش با و از کنه کاران بناؤ سپاسانه آنها ات آدم کن. اسم ربک و هر صبح شام به یاد آبر و ان اللیل تسجد لهم و سببیح بعد شبانگاه برای او سجده کن و مقدار طولونی از شب او را تسبیح کن مانا آنها سندگی سودکتر دنیا را دوست دارند در حالی که پشت سر خود روز سع و سنگینی را می میکنند نحن قلقناهم و شددنا اثرهم و اذا کئنا بذلنا امثالهم تبدیلا ما آنها را با قیبان خواهی وجودشان را محکم کردیم و هر بخواهیم جای آنان را به گروه که تیگری این یک تذکر و یاد آوری برکت بخواهد را که سوی پربارکارش انتخاب می کند و ما تشاءون الا ان يشاء الله. اِنَّ اللَّهَ تَنْعَلِمَ الْحَكِيمَ. با شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد، بیکمانیم، خدا پانو، آو و حکیمیم. يُدْخِلُ مَن يَشَأ. رحمتی و ظالمین اعزد لهم عذابا علیما هر کس بخواهد در رحمت خود بارد می کند و برای سالمان عصاب در ناوکی فراهم ساخت است